سلام خانم. سلام خوش آمدید. می توانم به شما کمک کنم؟ من دانشوی ادبیات فارسی هستم. می خواهم با بخش فارسی کانون آشنا شوم. دوست دارید به کلاس های آموزش فارسی بیایید؟ کلاس های فارسی چگونه است؟ ما برای هر دانشجو یک کلاس ویژه داریم. شما چه چیزی می یاد بگیرید؟ می خواهم دستور زبان فارسی، گفتگو، خواندن و نوشتن را یاد بگیرم. شما می در کلاس فارسی همه چیز یاد بگیرید. ما کتاب و کلاس مختلفی داریم. این کتاب ها چگونه است؟ ما برای خواندن، دستور زبان و گفتگو کتاب مختلفی داریم. این کتاب را کانون تولید کرده است. خوب است. پس کتاب شما متنوع است؟ بله، کانون زبان ایران بیشتر از چهل کتاب دارد. این هم یک فرهنگ لغت است. این فرهنگ لغت بسیار خوب است. می توانم آن را بخرم ؟ بله. کتاب ها و سیدی ها و فرهنگ لغت را می توانید بخرید.